حضرت میمونه شخصیتی بود اموال مومنین بود حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها اموال مومنین بود و خاله حضرت عبدالله ابن عباس بود در در فتح مکه در عمرت القضاء در فتح مکه در عمرت القضاء در القضاء در سال هفتم هجری نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم با حضرت میمونه ازدواج کردند و در احرام بودن ازدواج کردند در مقام سریف سریف همه محل نزدیکی مکه هست اونجا ازدواج کردن چون احرام داشتن دیگه ازدواج عروسی صورت نگرفت عمره تمام شد همونجا در مقام سریف دوباره وشرا ظفاف صورت گرفت و حضرت میمونت دوباره در سریف وفات کرد و در سریف هم به خاکس شد